بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی فلسفی موضوع سخنرانی امامت جلسه چهارم فعوذ بالله السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الله على سيدنا و نبينا و شافيعنا و بناء القاسم و الطيبين الطاهرين و الله على عبادهم أجمعين إلى يوم الدين. شروع در مسئله امامت این سلمه را ارز کردیم که در قرآن شریف توحید منحصر به توحید ذات و توحید صفات نیست توحید در قرآن یکی از مواردش توحید در قامون گذاری و جعل حکم است و که از مواقعش توحید در اطاعت است مکرده در مکرده آیات شریفه قرآن مبین این مطلب است زرایت و اختیار واقعا امور به دست فضل الهی تعالی است فقط هیچ بر کسی ولایت ندارد مگر آن که خداوند تعالی به عنوان ولی تعیین کرده باشد. به حفظه الله اولیا و بالغ و برای خودشون خوبی اختیار میکنن می کنند و می کنند ولی خدای تعالیمون حسرم ولی یه است تا تتخیصون می دونی ولی یا غیر از برای خودتون ولی یه انتخاب نکنید حسنی شود به و متعدد الان من محیا ندارم آیاتش رو ولی وقتی مراجعه کنید قرآن شریف آیات راجعه به اون مطلب متعدده اتخذو اتخذو احباره هم و رخبانه هم اربا و الله اون هفته عکس کردیم که روایات متعددی در زید این آیوم شریفه وارد شده که هر کس انتخاب کند و اختیار کند برای خود مولایی و او رو حرفش را بپذیرد و از رستورات او اطاعت کند که او از جانب خدای تعالی نباشد این برای خودش بی غیر از خدا قرار داده است من دون الله و و رهبان هم ارباب من دون الله و المسیح ابن مریم این هم در این آیین شریفه که اتخذو احبار هم و رهبان هم ارباب من دون الله از سر دیمون که الانم متعددی داره یکی از روایاتش به این مزمونه که از یه ابن حاتم که پسر حاتم تاعیش میگه آرف شدم در مسجد به خدمت در واسه واری واری هنوزم مسلمان نبودم در این گردنم یه صلیب آبیزون بود از طلا پیغمبر فرمود برو این رو باز کنی کلمه یا ملاقص من یادم نیست چگونه تعبیر کردم فراموش کردم در بروی رو باز کن از گردنه می گرفتم باز کردم آمدم نشستم در محضر رسول خدا صبوالی واله پیغمبر سوره براعت رو خوند و ما گوش می کردیم رسید به این آیه شریفه اتخذوا احبار و روحبان هم. یهودی ها از شد احبار خودشون را نصرانیا ها خودشون را که اسم علمانشون اخبار و روحبانه اینها را به عنوان اتخذ من دون الله احبار و اینها را به عنوان رب برای خودشون قرار دادن از یه مواطن که هنو مسلمون نشده بود فرز کرد یا رسول الله ما که رب قرار ندادیم ما علمای خودمون رو به عنوان رب نمیشناسیم شما اینو در حقی که میهین؟ حضرت بهش فرمود آیا این چنین نیست که اینها این, این علمای شما احکامی را که شما میدانید و خلاف دستور خداست میگویند و شما هم میپذیری این چنین نیست؟ کرد. بله یا رسول فرمود همین عبادت هست عبادت غیر خداست هست رب قرار دادن غیر خدا هست. بنابراین یه رب قرار دادن یه شرک یه مصداقی از مسادیق شرک در اصلاح قرآن کسی که بر خودش آقا بتراشد و دنبال ای بره حرف ای رو گوش کنه ولی این آقا است که خدا تحیینش نکرد این داخل در شیعه که در بنابراین اون هفته گذشته احرس کردم شیعه بنابراین میگه ما خیلی دعوا نداریم با شما ما دنبال آقایی میریم که خدا برای ما ولی قرار داده از او را انما ولی یکمالله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون از صلاح و یعطون از ذکه الله هم را شما هم دنبوله کسی که دلتون میخواد برین کسی که دوست دارین برین ولی بدانید که شرک هست در اسطلاح قرآن شرک هست ولی زاست که در اون رضایت معروف و مشهور که حضرت رضا سلام و فرمود کلمات لا یا خیل الله اسمی و خیرت شد فرمود به شروطها و انم این شروطها من شرط توحیدم بنابراین این حقیقت حقیقت از خب شیعه ای از شعب توحید و خدای تعالی چیز تازه ای نیست خیلی هم زحمت نداره فقط این مطلب رو باید بحث کرد که چگونه خدای تعالی اینها رو تعیین کرده که شما میدید به عنوان آقا و مغلا و ولی چگونه تعیین کرده البته این محتاج به بحثه و بحثش رو ما در اینجا انشاءالله تدریجاً باید بکنیم این راجع به این شروع در بحثی که کرده بود مطلبی را که امشب اضافی بر اون مطلب شروع می‌کنیم، تا ببینیم بعدا به کجا منتحی میشه است که از شود امامت در مذهب شیعه مشتمل برس جنبه یک جنبش زمانداری امور مسلمین و اداره حکومت اسلامی یه جنبه جنبه اساسی که برای ما الان به دردمون میخوره اون جنبه بیان احکام و بیان وزائف و تفسیر و شرح قرآن و بیان احکامی که در لسان رسول الله علیه و آله بیان نشده از کی باید بگیریم؟ شیعه مدعی است که از ائمه باید بگیرد. امامیان از حنفی از ابی حنفه میگیرند، از مثلا فرض کن احمد حنبل میگیرند، از شافعی میگیرند، مذاهب مختلفه ولی شیعه این عقیدش که ما احکاممون رو تفسیر آیات قرآن شریف را اخلاقمون رو تفسیر اعتقاداتمون رو بایستی از این بگیریم. چرا باید بلعت میکنی؟ اینم مطلب دوم پس مطلب اول این است که زمامداری امور مسلمین به دست کی باید باشه؟ هر کسی اومد سر کار بپذیریم نه اونی رو که خدا قرار داده ما میپذیریم از کی باید احکاممون رو بپذیریم از کی باید اعتقاداتمون رو سوال کنیم از کی تفسیر مجملات قرآن رو بپذیریم این مطلب هم باید از این نسال کرد این مطلب هم مطلب دقوم و اونی که الان برای ما اساسی همین مطلب دومه. مطلب سه یه مطالبی عالی که از سطح فکر ما خارجه اون مقامات معنوی امام امام یه مقامات معنوی داره که از درک فهم ما خارجه البته معیداتی از قرآن شریف موجوده در قرآن نزاعش و مثلا فرد و فرمیت مختبه در قرآن موجوده ولی کنه علا کل یه مطالبی برای امام در روایات و در آیات شریف قرآن حتی مذکوره که این مطالب از فکر و عقل ما خارجه ولی چه مقامی خدا می غیر از خدا کسی نمی تونه اطلاع کنه که امامتوا عز و رضا فرمود الامامتوا اشد قد مشواد به اینکه اعظم و قدران و اعظم مشواد به اینکه ان کسی و منان من الله و منان اب و اوغن را از موجهون من و نه کسی و الناس دست مردم به اون مقام نمیرسه درکشو نمیتوانن بکنن ولی یه مطالبی هست که البته اونم باید بخونیم و میخونیم انشاءالله اگه زنده موندیم و این آیات شریف قرآن هم فیل جمله بر این مطلب دلالت داره این سه مطلب مطلب امامت شیعت شیعت چی میگه؟ میگه امام کیه؟ میگه امام ما اون کسیست که که و وظایف و قرآن و دینمون رو باید از او بگیریم این مطلب اول مطلب متنی ارکادم مطلوب مهم ما مطلب دوم این است که ان الله اگر حضرت رسول صلوات الله علیه آمد همه ائمه منصب رو داشتن ولی غیر از امیرالمومنین سلام الله علیه اونم در اوایل عمرش که ازدما منام امور مسلمین و از می از زعامت خلق به دست اونها اونها باید اداره کننده مملکت باشند این هم مطلب دوباره مطلب و مقامات معنی از حضرت رزا سلام الله علیه کسی پرسی امام برای چه خوبه؟ می چه کنیم امام؟ پس فرمود خدای تعالی امامو معین کرده برای جهاتی یکی دو تاش رو من نمیخونم برای کننه از حضرت چرا خدای تعالی را نعمت جعل اولی اول الامر مثلا و امر از چرا خدا اولو قرار داده چرا امر کرده است که اطاعت کنند از اولو الامر از صرمود کسی للکثیره جهات متعددی دارد. این مطلب این است که ان الخلغا لم ووقعوا و على حد محدود و امر و الایت عدو ذلک خدای تعالی دستوراتی داده واجباتی معین کرده محرماتی معین کرده حدودی برای کارها معین کرده چی باید مواظبه این مطلب باشه که مردم از این حدودشون تقطی نکنن؟ چی باید مواظبت کنن از این که گناه انجام نشه؟ سرقت انجام نشه؟ مال مردم خورده نشه؟ چی باید این کار رو بکنه؟ ما مدعی هستیم، چیه مدعی است، یه فرد معصوم اسمت دارای اسمت که اسمتیش هم بعداً عرض میکنه خب، والا حضرت میبرموید. لما وقعوا علا وقعوا علا حد محدود و امروا الله یساد ذوالک الحد امر شده که این حدود خدا به کسی تعدی نکنه چرا تعدی بکنه چرا تعد... چی میشه مگه تعدی بکنه لما فیه من فسادهم این قانونای خداوند تعالی را هر گوششو بخوای خراب کنی ده از خرابتر میشه پس بنابراین و دم افیهم هم لا یثبت ذلک ولا یقوم الا بان یجعلهم امینان یمنعهم من تعدی و اجی امین معین کنه خدای تعالی که جلوی زیاده روی ها و دزدی ها و زنا ها و شرب خمر ها و مال مردون خوری ها رو بگیره کی باید اینا رو بگیره؟ جلوه این امر رو کی باید بگیره؟ یقیم و الحدود و الاحکام این یکی از کارهای است پس منابراین همین زعامتی که ارز کردم که او باید زعیم باشه که این ها صحیح اجرا بشه در بیدرمون اینه که اگر مجری قانون بنده خوب خدا نباشه اولین کسی که تخلف میکنه خودشه و اون کسی که خودش تخلف میکنه میتونه جلوی تخلفات دیگران رو بگیره توی یه روایتی از صادق می فرماید اِنَّ اومر اومر بعد از اینکه که عبی بک شد سر کار اِنَّ اومر گفت به عبی بک ان ان الناس عبيد الدنيا مردم بنده دنیان عمر بعد عزت کو ان الناس عبيد الدنيا و لا یریدون غیره فقط دنیا میخو کو همه دنیا چی امنا ان علی و اهل بیت الخمس والفی و الفدک نظر این فدک و نگذار که خمس و نگذار که فی بر سر علی باشه اینو خدا براش قرار داده ها امنا علی یا او قران و نشود امثال ظالمک حالا فدکش،, فدکش هم شاید از قرآن باشه و آتدالغربا حقه و المسکین و ابن السبیل امن علیان و ازمی شود و اهل بیت الخمس و الفیع و الفدک فان امن شیعته ازا علم و زالک ترکو علیان و اقبلو علاق اگر شیعش بفهمن علی دستش خالیه راهان میکنن او رو میان دنبالت و رقبتاً فه دنیا خب این کسی که بخواد اول کار نداره کنه حکومت اسلامی رو با حقه و حیله و مال مردم و بدجنسی و مخالفت و قرآن داره شروع میکنه این امید این هست که این قرآن رو اجرا کنه پس ما و امینی باید باشه و با امین کامل نداریم غیر از باید یه امینی باشه که اینا رو اجرا کنه کی باز اجرا کنه اینا رو عجیبه قضیه بین احوالات و عمر و امپیک خیلی شنو قلوق میشه چرا من متاثر میشه مغیرت ابن شعبه ظاهران کرد. چهار نفرم شاهد، شهادیه بودن سه نفرشون اومدن شهادت دادن در حضور اومد که بعد ما دیدیم که این کار انجام شد چهارمیش زیاد بود پدر ابن زیاد وقتی از در وارد شد که شهادت بده و گفت می‌بینم می ای را که مثلا از اصحاب رسول خدا را زلیل نمی من نم دیده بود اونجا خب جوری یه جور شهادت دادو یه چیزو شلو ولی خیره خب. حد از او در رفت ستای دیگر رو حد غزب زدم چید یه نهایت عجیبیه ستای دیگر اون رو؟ حد قصد زدن این حکومت مگه میتونه کار کنه برای مسلمان ها باید دست کی باشه این قانون کی باید مجزیه ای باشه میدونی صورت میفرماید که یکی از خواست اینکه خدا خدایت و جل و حلا از میشود به می اینکه امام قرار داده و ولی امر بر مسلمین قرار داده قلل امر قرار داده یه فایدش این است که این حدود خدایی رو محفوظ کنه نظر کسی تعجیب بکنه، این یکی و من ها از جمله خواص امام انا لم نجد فرقتن من الفرق ولا ملتن من الملل ما نیافتیم در هیچ کجای دنیا یه جماعتی یه ای یک گروهی اینا باقی بمانند بدون رئیس آقا میخوان سرپرست میخوان رئیس لازم دارند. لم نجد فرقتم من الفرق ولا ملتم من الملل آشو و بقو اللہ به قیمن و رئیسن فی امر دین و دنیا فلم یجز فی حکمت الحکیم خدای حکیم رها میکنه مردم رو بدون سرپرست مسلمان ها باقی اگه سرپرست نداشته باشن کفار اینا رو رهاشون میکنن نه هوایشون افین میبرن فلم یجز فی حکمت الحکیم ان یت رو کل مَا يَأْلَمُ أَنَّهُ لَوْ بُعْدَلَهُمْ وَلَا قِوَامَ إِلَّا بِ اون, اون باید باشه که اگر دشمن حمله کرد دفاع کنن. اگر مقتضی بود ظالم را از ظلمش جلوگیری کنن و امثال لازم از این مطلب پس خدای تعالی برعمیان کنه که الان یک کلمه عرض میکنم بحثش بعده و لولا بله و من هو انه لو لم یجعل اماما امینن اگر خدای تعالی امام قرار نده بر مردم هر کی میاد این دین رو زیر روش میکنه هر کلمش یکی میگه یه نفر میخواد لاغر یه امامی لازم داره که این دین رو مواظب باشه کجاش تغییر داره میکنه که این قرآن هم همین رو می همه مسلمون های هم همین رو میگن که این دین باید تا قیامت باقی باشه خب این دینی که بناس تا قیامت باقی باشه این خدایی که برای هر کاری کوچکتر این کار دستور داری برای کوچیک ترین کار وظیفه معیان کرده حتی مثلا وقتی بری مستر چجوری بعد برید و چیکار بعد بکنید خاطر چجوری بذاری چجوری بشینی چجوری طاعت بگیری راهی روزان مغاز ابو بخری چه جوری بعد بخوید میخوام چجوری باید بخوری؟ بشینی چجوری بشینی میخوام کوچ راه بری چجوری راه بدید این خدایی که این خورده ریزای کمالات انسان رو معین کرده اون وقت برای سرپرستی مسلمان کسی تعیین نمیکنه به های کرده این همجور خودش تا امون هم که این تا قیامت هم این دین باقی بمونه میمونه این مطلب ممکنه بمونه بنابراین ورماد این دین انقدر میکشن هر کسی هایی اتراه حد اقل نمطلب یه نفر باید باشی که به مردم بگه این دین اینجاش خراب شده دادم افضاد که اون از مشهد وقتی امیر و ممنون سلامت الله و از و از از آخر اومدن خلیفه قرار دادن او رو با او بیعت کرده. به موارم از نشده اومدن گفتن که یا علیه دفعه رو معین کن که برامون سلا... سلات تراویح بخواند سالات تراویح سنیات و وسیله همه ولی مسجداشون نماز تراویح میکنن نماز تراویح فی نفسی نماز مستحب است مستحب در هر شب ما مارمزون چند رکد نماز بخونم صد رکد یا کمتر یا بیشتر مستحب دیست خب اومد اومد تو مسجد این مردم ها دوید که این بر که اون بر دارن نماز مخونن گفت این چه وزی هم که دونه, دونه هر کنیم سجی خودتون دارن نماز مخونن یا آقای رو تعیین کرد به عنوان امامت ای امام باشه و همه بیند به این اختلاف کن اون وقت نماز جماعت بابراده هنوز هم هم هنوز هم هم. الان از ساعت بسرن میگن از ساعت بسرن یکی یک و نیم دو از شب گذاشته تا ساعت ده دوازه نماز جماعت دائهی مسجدان هران بود اصلا فرمود نماز تراحی جماعت نباید خونده بشه نماز مستحبی جماعتی نیست گفتد با عمران از اونه شود به این که این مثلا فرض کنی سنت عمر رو بره تغییر میده بود امسال خودم عمر تو روایات داره که گفتم امشب این نماز رو نمازتون باشه و نماز افتضاع کنین و خوندن چند شب بیه عمر دید مردم یک جمعات مفصلی گفت نه عمرت ال بدعه خوب بدعتی بودشته. خودش داره میگه خوب بدعتی بودشته. همین اون جماعت از نماز مستحب جماعتی نداریم ما در دین خدا نماز مستحب جماعتی نماز مستحب فراده که درش مخواد نیخونه راز گفتن با امره با, امرا با. پا پا میشه اصلا. به تغییر ما گفت بریم بدیم با, با, با کنیم چه بکنیم؟ وقتی وقتی موندم در جایی که دیدم غیر از خودم و اهل بیتم کمکی ندارم ندارم و چی باید اینا رو بیان کنم لاغل بیانش رو بکنم مرزون بدانم که, چیز. که هم چیز خیلی خوب مناورین رو که آخرین مطلبش همینه که لوبلم يُجْعَلْ لَهُمْ اماماً امیناً حافظاً مستودآلت درست الارض میشود به این که ملّه و ذهب الدین و غیرت السنه و الاحکام و لزاد فیه المبتدعون کسانی که بدعت میدارن تو دین زیاد میکنن، از دین کم میکنند تا که موافق با میلشون و سازگار هاشونه عمل میکنن هر جش میبینن مزاحمه یا الله تغییرش میدن و لذاد فیه المقتدعون و نغس الملحدون و شبه ول المسلمین مشتبه میکنن مردم بر المسلمین مطالب را فولملقی من حافظزن قیهرت شرای اوستانن اگر یه نفر فردی که اداره کننده اینها باشه نباشه شریعت ها تغییر می کندد و دست صورتات خدا عوض میشه. پس همه این مطالب که است که ازیم که این رو باید بود اداره کردن ب کرد به دست یک نفر امینی که به احکام خدا خیانت نکنن کسی مواظب احکام خدا باشه تغییر و تبدیل و زیاده و نقص داده نشود و همچنین راجع به قانون هایی که در دست مردم درست اجرا بشه صحیح اجرا بشه مثل مغیره خاتمه پیدا نکنه حد که خوب او حد بزن نزنن بعد اون بیچاره هم حد بزنن خیلی خس بنابراین ما امام میخواند امام رازم داریم دنیا و آخرت ما به دست او و بستگی به او داره. دنیا و دین ما بستگی به او داره. این بخوان قانونهای خدا جاری بشه او را رازم داریم دیگری این مجره خوب نخواهد بود اون که را خدا تعیین کرده اون مجره مطلب خواهد بود و دیگران اون چرا که, که مطلوب است نمی من و همچنین اگه بخوام دین باقی بمانه و شب و روز نه بیه سالی عدده در هر شب و روز صدها و هزارها مسئله تازه اتفاق میفته کی بلد این جوابهای اینا رو بده و کی باید معین بکنه این رو برای این تعین این مطلب همه باید معین کنن خودشون باید متصدی این کار باشن بنابراین اونچرا که معلوم شد ما فعلا رو شروع کردیم تا ببینیم به کجا میرسه سه مطلب از امام اصلاً میگیم حالا سه مطلب از امام مطلوب است یکی اجرا کردن حدود و تعیین کردن از می امور مربوطی به دنیا و مردم و اجرا کردن صحیح قانون و امساد که اسمش زعامت امور مسلمینه مطلب دوم مبین احکام باشه احکامی که رسول خدا بیان نفرموده احکامی که رسول خدا فرصت نگرده بیان کنه یا زوابطی بیان کرده است که غیر از اینها کسی نمی انا تول علم و با الذين بابو حوابتش در سوناست لذا تو روایت داره که عرض میشد علم ني رسول الله صلي الله و صوالی واله. الف باب من العلم ينفته من كل باب الف باب هزار در من رسول هزار در علم رسول خدا بر من گشود که از هر دری هزار در دیگر باز میشد بنابراین این کسیس که صلاحیت داره در اختیار مردم باشه در دسترس مردم باشه که دین رو برای مردم به نحوه کامل و اتم بیان کنه پس مطلب اول ز مطلب دوم بیان دین به کامل که از کردیم هر روز و هر شب و نه فقط در مسائل و احکام مسائل اعتقادیه ای hey, اشکال از این از اون همطور انواع و اقسام و اشکالا بیدین و بادین و لا مذهب و داره اینا رو باید امعیان کنه کسانی که در اون راه کار میکنن و در راه این کار میکنن شاید بتونن یه مقداری کارا رو درست کنن ولی آرا کل حال انتظار از اوس و ثانی و از نمسید این مطالب معنوی امام که ما خیلی عقل مون ولی خوب فلیمون راهی برای باز شدن او هست اللهم شنع علوم هست عجل هست